پرسیدم کی فراشمان عوض شده است؟ قلام الان سه سال و چند ماه است که در این مدرسه کار می کند با همان آهنگ شیرین و معدب، با همان خنده تصنعی گفت عجب، پس شاید اشتباه می کنم این زن مهارتی در تقلید و تصنع داشت از همان دقیقه اول احساس کردم که با یک زن عادی سر و کار ندارم ناگهان بر و رو بلار چند لحظه هم شده یقین حاصل کردم که خودش است لحظه چند به چشمهایش خیره شدم هیچ شباهتی بین این چشمها و چشمهای تصویر روی پرده نبود اما پیشانی او لب و دهن و زولف سیاه و صاف و بینی کشیده قلمی شباهت داشتند متأملم معلوم بود که گذشت روزگار این لب و دهان را هم پیر کرده است دندان سفید ده یک دست داشت و همین دندان ها و لب باریک خنده او را دلفریب میکرد. این زن به خوبی میدانست که با خندش چه تأثیری در دیگران دارد. پالتوی گشادی که آن روزها مد بود برتن داشت. پالتو سیاه بود. یخو برگردان سرخ رنگ ابریشمی صورت زن را رو روشنتر و باطراووت تجربه میداد. آسر سرخ پالتو برق میزد و نرمی و صافی آن، از دور هم ادراک میشد. شد. پالتو باز بود. کیف مشکی را به بازوش آویخته و دستش را به کمربند قرمز رنگ براقی که روی پیراهن سیاهش بسته بود قلاب کرده بود. پاهش کشیده متناسب ورزیده و پسندینه می نمود. یقینم شد که با این زن باید استادانه بازی کنم و لا این زن می رود و من بیچاره باز هم باید دل بخورم. آنچه استاد کشیده هیچ من هم باید بسوزم و چشم به راه باشم. گفتم تشریف آورده بودید که موزه مدرسه را تماشا کنید؟ <تصفيق> بله، خیلی میل داشتم که آن را ببینم. بدبختان امروز موزه تعطیل است. از برف و باران چند روز اخیر صفح اتاق چکه می کند و برای اینکه به تابلوها ها نرسد یک هفته موزه را تعطیل کردم. پس از تعمیر شیروانی مجددا برای تماشای عموم باز شود پس موزه تحت نظر شماست و اگر می میتوانید به من اجازه بفرمایید که آن را تماشا کنم البته ممکن است اما خب خانم میدانید که کار اداری است و اشکال دارد. با چنان ملایمت و شیرینی به من جواب داد که من خواهی نخواهی مجبور بودم رام شوم و هرچی بیشتر پافشاری میکردم او نرمتر میشد. شد. من اگر یقین داشتم که این بانوی زیبا و آراسته همان زن ناشناس صاحب چشم هاست حتما تسلیم نمی شدم با او را وادار می کردم که از من بیشتر خواهش و تقاضا کند تا او را مطیع کنم و به زانو درآورم. یقین داشتم که زن استاد را می شناخته است. در عین حال دو دل بودم. می بایستی شخصیت و اراده خود را به او نشان می دادم. اما عیب کار این بود که تزلزل خاطره راه مرا صد می کرد و من مجبور بودم دست به عصا بروم. چند بار آرزو کردم که آقا رجب زنده باشد و اقلن یک بار به سال من جواب سریح بدهد. به من گفت اشکال داری را همیشه می شود رفت کرد. به علاوه من مسافر هستم اگر امروز تابلوها را نبینم دیگر فرصت نخواهم کرد. این تهدید نبود. این زن فقط به قصد دیدن آثار نقاشی استاد مکان روز پانزدهمین سال مرگ او به تهران آمده بود. اما من تهدید تلقی کردم و محکمتر جواب دادم. ممکن است از خانوم استدعا کنم که روز دیگر تشریف بیاورند نه. آقا چنین تقاضایی نکنید. نمی شود. زن ناشناس یکی خورد. صورت خندان غمانگیز و جدی جلوگر شد. اما این وضن چند ثانیه بیشتر طول نکشید سرش را تکان داد باز هم خنده سیمایش را تابناک کرد و دندانهای سفید و یک دستش را نمایان ساخت گفتم چرا مگر امروز روز خاصی است نه nah, امروز روز خاصی نیست اما دلم میخواست میتوانستم آثار استاد را ببینم دیگر داشت معیوس میشد داشت جا خالی می کرد از فرصت استفاده که اداما پرسیدم ممکن است از خانم استفاده کنم که خودشان را معرفی کنند من نازم این مدرسه هستم ای آقا به من چی کار دارید؟ من هر که باشم از شما تقاضا می کنم اجازه بفرمایید امروز اینجا را تماشا کنم برای اینکه دیگر فرصت ندارم از شما خیلی ممنونم شاید خانوم خودشان هنرمند هستند شاید خودتان نقاش هستید آن وقت البته استثنا جایز است ممکن است برای روزنامه یا مجلهای مقاله می خواهید بنویسید البته اجازه دادن به شما هم اگر ممکن باشد خالی از اشکال نیست اما دلیل هم همیشه میتوان پیدا کرد مثلا ممکن است به عذر اینکه وضع قطبار تالار موزه را به شما نشان بدهم بگویم در را باز کنند مقصودم از معرفی خودتان این بود والا میفهمید بنده چه کنم من به این موزه علاقه من هستم اگر بدانم که توصیه شما به اولیای امور باعث خواهد شد که در ساختمان بنای جدید این مدرسه تصریح شود حاضرم از الان تا فردا صبح در تالار را در تالار را فقط محض خاطر شما باز بگذارم از این گذشته بدخره هر کس به قصد تماشا موزه میآید باید قبلا جواز از دفتر مدرسه بگیرد در دلش به حالم سوخت با نظر رقت انگیزی به من نگریست مثل اینکه از شیرینی زبانی من متاثر شد شاید این لحن اداری من رقت او را برانگیخت ناگهان حادثه عجیبی اتفاق افتاد با وجود تمام انتظاری که داشتم با وجود که سالها منتظر چنین پیشامدی بودم باز هم عجیب بود به من گفت اسم من فرنگیس است اگر از شما خواهش کنم که اجازه بفرمایید من امروز فقط نیم ساعت این موزه رو تماشا کنم و بروم باز هم به صدای من را رد میکنید کنید من نخونرمند هستم و نه نقاش و نه روزنامه نویس اما خیلی دلم میخواهد امروز این تابلوها را تماشا کنم اما حادثه عجیب بیان این جمله نبود لحنی که با آن مطالب خود را ادا کرد این نبود این هم نبود که فرنگیس بی اسم خانوادگی اسم همان زنیست است که پنج سال پیش روز هفته دی به دیدن نمایشگاه آمد و چند روز بعد از آن آقا رجب من گفت که او را در تالار دیده است نه من دیگر یقین داشتم که این زن خودش است از میان پنجزنی که روز هفته دی یه پنج سال پیش به دیدن موزه آمدند و رفتند یکی به نام فرنگیس بود و این زن نام خانوادی را نگفته بود من تمام آمار تماشاگران را در نظر داشتم در طی این پنج سال مکرر دختران و زنانی با نام فرنگیس آمدند اما همه آنها اسم خانوادگی خود را همراه اسم شخصی می نوشتند. من با همه صحبت کرده بودم با چه دلهورهی حرفهای آنها را میشنیدم اما آنچه وچه ام، امتیاز آن زن ناشناس باید باشد یعنی نگاه نافذ چشم ها در این زنان و دختران نبود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 از همین جهت حقش بود که بیشتر فاق کنم و او را آن روز راه ندهم تا باز هم بیاید به زانو در و تسلیم من شود و اصلاحی را که من آرزوی کشف آنها را داشتم بروز دهد.